کنون که میدمد از بوستان نسیم بهشت من و شراب فرحبخش و یار حور سرشت گدا چرا نزند لاف سلطنت امروز که خیمه سایه عبرستو و از گهلب کشت چمن حکایت اردی بهشت میگوید نه آقل هست که ننس خرید و نقد بهشت به می ماارت دل کن که این جهان خراب بر آن سر است که از خاک ما بسازد خشت وفا مجویزه دشمن که پرتوین ندهد چو چ شماصوم افروزی از چراغ کشت مکن به نام سیاهی ملامت من معست که آگه هست که تقدیر بر سرش چه نوشت قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه هست می رود به بهشت